بادها ابر ابی را ابر بارانهای حاصل خیز را های خفته را ماند بر روی رود پیچان پل پایها در آب و سربر ساحلی هشت هشت دم بر ساحل دیگر نش به سر اندیشه ای از خوشک سالی هاست نش به دل اندیشه از تقیان نش سروری با نسی می خورد نش قروری با تب طوفان نش امیدی می پزد در سر نش به هرسی می جان بند بند استخوانش داستان از خیالی هاست بادها ابر عبر عبیرامیز را، ابر باران های حاصل خیز را معبر خورشید و باران بی خیالی هیچش از باران و از خورشید بر جایی استاده پل معبر بسیار موکب های پرفانوس و پرجنجال شادی های عالمگیر. مأبر بسیار موکبهای اندهگین نالش ریز سر در زیر خشت خشت حیکلش از نامداری های بینامان فرو بر جایی استاده پل بادها عبر عبیرامیز را عبر بارانهای حاصل خیز را گاو مجروحی به زیر بار روستایی مردی از دنبال تنگنای گرده پل را به سوی ساحل خاموش میپیمایدند در مه که گویی در اجاق دودناک شام میسوزد هم در این هنگام از فراز جان پناه بی خیال سرد مردی در خیال آرام بر رود تند پیچان چشم